گفتن که برای کاهش عصبانیت خودم و همسرم در زندگی چی کار کنیم؟ یا آهایی پرسید قرآن و روایات این است که از مرد مهربانی و گذشت معمولا اگر از مرد شروع میشه گذشت خانم ها انشالله بروز میکنه و ظهور پیدا میکنه تا هر دو نماز ظهر و نماز مغرب که میخوان بخونن از آن اقامه بگن طوری که گوشیشون بشنوه صدای خودشون رو شلو ایشالله سره.